از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا سلاما مدتی گذشت اما خبری از نجات دهنده واقعی نشد که نشد و پسر جوان که همچنان ادامه کرد نجات دهنده شاهزاده خانومه نزد پادشاه رفت و گفت قربان بهتر هرچی زودتر مراسم ازدواج ما رو برپا کنین من من دلیل این تعلل و درنگ شما رو نمیدونم قربان. خود شما قول داده بودین که هرکس شاهزاده خانومه پیدا کنه اونو به عقدش در میارین. حالا که من دخترتون رو پیدا کردم شما هیچ اقدامی نمیکنین و خلف وعده میکنین مردم در انتظار عروسی ما هستن پادشاه که دید خبری از اون کسی که دخترش میگه نیست و از طرفی بیش از این نمیتونه خلف وعده کنه اعلام کرد بسیار خوب فردا جشن عروسی برگزار میشه که براتون نقل کردم بخشی از افسانه پرنده نو سر از مردمان سرزمین چین بود برگرفته از کتاب افسانه های مردم چین اثر فردریک اچ مارتینز با ترجمه از عرفان حسین زده که افسانه امشب که نامش پرنده نوکسر بشتوید. در زمانهای خیلی خیلی دور در سرزمین چین شاه و ملکهی زندگی میکردن که دختری زیبا داشتند روزی از روزها شاهزاده خانم برای قدم زدن به باغ رفت اون از دیدن گلهای خوشبو و زیبا و لذت میبرد و زیر لب برای خودش آوازی و زمزمه میکرد این کار هر روز شاهزاده خانم بود شاهزاده خانم افسانه ما همینجور که داشت توی باغ قدم میزد طوفان وحشتناکی ناکی شد و شاهزاده خانم با خودش برد این طوفان وحشتناک و پرنده نهسر برپا کرده بود تا شاهزاده خانم بدزده و اونو به قار خودش ببره چند ساعتی گذشت و ملکه و پادشاه که دیدن خبری از شاهزاده خانم نیست با نگرانی به باغ رفتن اما اثری از دخترشون ندیدند که ندیدن تمام اهالی قصر پادشاه به گوش و سر زدند، اما اونا هم خبری از شاهزاده خانم به دست نیوردن پادشاه به مردم سرزمینش اعلام کرد هر کسی شاهزاده خانم پیدا کنه میتونه با اون ازدواج کنه از غذا جوانی دیده بود که پرنده نُخسر شاهزاده خانم رو به قارش می‌بره و فورا همین جوان تصمیم گرفت بره و دختر پادشاه رو از دست پرنده نُخسر نجات بده و با اون ازدواج کنه. قار پرنده نُخسر وسط شیب تند صخره‌ای قرار داشت به طوری که از پایین به غار راه داشت از بالا. وقتی جوان دور صخره می‌چرخید پسر رو دید که به اون نزدیک میشه. پسر از اون پرسید: "اینجا چیکار می‌کنی؟ کارت چیه؟" جوان گفت: "پرنده نهسر شاهزاده خانم رو دزدیده و اونو به قارش برده پسر گفت: "تو مطمئنی که پرنده نهسر اون رو دزدیده؟" جوون به تندی گفت بله بله مطمئنم من با چشای خودم دیدم که پرندگی نهسر شاهزاده خانم رو به طرف قارش برد من میخوام خانم رو نجات بدم و با اون ازدواج کنم اما نمیدونم چجوری باید این کار رو انجام بدم پسر آروم گفت من من حاضرم کمکت کنم جوون با خوشحالی گفت واقعا چجوری؟ پسر گفت من فرصت بده به سراغ دوستان برم و از اونا چاره این کار رو بخوام اونا آدمای های باهوشی و چاره ای رو پیدا میکنن. پسر اینو گفت و سراغ دوستش رفت ساعتی بعد پسر از راه رسید و به جوون گفت ما ما تو رو توی سبدی میذاریم و از بالای صخره سخر به غار میفرستیم اینجوری میتونی به راحتی وارد قار بشی و شاهزاد خانمون نجات بدی جوون با خوشحالی گفت ها فکر خیلی خوبیه از همین شما متشکرم. از همتون خلاصه. جوون توی سبد نشست و از بالای صخره سخر به غار فرستاده شد وقتی جوون به قار رسید دختر پادشاه و دید که اونجا نشسته و در حال شستن و تمیز کردن زخم های پرندی چون سگی سر دم پرندی نه رو گاز گرفته بود و هنوز از زخم اون خون می شاهزاده خانم یه هو متوجه ورود جوون به غار شد و بهش اشاره کرد که پنهون بشه و جوون هم در گوشه از غار پنهون شد دختی دختر پادشاه زخمهای پرنده رو شست و اونا رو بست پرنده نهسر احساس راحتی کرد و نهسرش یکی پس از دیگری به خواب رد بعد جوان از محلی که پنهون شده بود بیرون اومد و نو سر پرنده رو با شمشیر طلایی و تیز خودش قطع کرد بعد به شاهزاده خانم گفت زود باش زود باش از اینجا بریم پدر مادر شما خیلی نگرانتونن شاهزاده خانم گفت نه بهتر اول تو بری بالا و من پشت سرت بیام جوون گفت نه نه من اینجا منتظر میمونم تا تو به جای منی برسی شاهزاده خانم اول راضی نبود اما بالاخره پذیرفت و داخل سبت نشست اما قبل از اون یکی از گوشواره‌هاش رو به جوون داد و یکی رو پیش خودش نگرداشت بعد دستمال یه دور گردنش رو هم از وسط نصف کرد و نصف اونو به جوون داد و گفت ای جوان از این هدیه ها خوب مراقبت کن حالا بشنوید از پسری که به جوون کمک کرده بود بله پسر در بالای صخره منتظر ایستاده بود و به محض رسیدن شاهزاده خانم به زمین تناب رو قطع کرد و جوون رو تو غار تنها گذاشت و شاهزاده خانم رو با خودش برد جوون وقتی متوجه شد پسر بهش كلک زده و مجبور توی غار بمونه شروع کرد به قدم زدن تو غار اونجا دختران زیادی رو دید که پرندهٔ نهسر اونها رو به غار آورده بود بعضی از اونها از گرسنگی طرف شده بودند جوون جلوتر که رفت ماهی بزرگی رو دید که با چهار میخ به دیوار آویزون شده بود وقتی به ماهی دست، یه دفعه ماهی تبدیل به پسری زیبا و خوشخیافه شد پسر به زبان اومد و گفت ای جوان از تو متشکرم تو کمک بزرگی به من کردی من از تو ممنونم پسر و جوان همونجا توی غار قرار گذاشتن که از این به بعد مثل دوتا برادر روشن چیزی نگذش که جوون به شدت گرسنه شد به دهانه غار اومد تا چیزی برای خوردن پیدا کنه اما اونجا فقط سنگ بود و سنگ یهو دید اجده بزرگی در حال لیسیدن سنگ بزرگیه جوون با خودش گفت آه بهتر منم همین کار بکنم شاید گرست نگیم رفت بشه و شروع کرد به لیسیدن یه تکه سنگ و دید بله دیگه حالت گرستنگی نداره جوون نزدیک اجده رفت و گفت ممکنه به من بگی چطوری میتونم از این قار خارج بشم اجده با سر به دونش اشاره کرد یعنی اون میتونه بر پشتش سوار بشه جوون هم همین کار کرد و در یه چشم هم زدن روی زمین بود در این موقع اجدها ناپدید شد و جوون رفت و رفت تا به که یک لاک پشت بزرگ رسید که پر بود از مرواریدهای سفید و زیبا مرواریدایی که جادویی بودند جوون مرواریدها رو از لاک لاک پشت در رو برد و توی جیبش گذاشت بعد دوباره به راه افتاد رفت و رفت تا به دریایی رسید اون وقت یکی از مرواریدای جادویی رو به دریا انداخت و جوون تونست به راحتی از اون عبور کنه اما در این موقع اژدهای دریا پدیدار شد و فریاد زد آی چه کسی در قلم رای من آرامش منو برهم زده ها؟ جوون جواب داد من قصد نداشتم آرامش شما رو به هم بزنم من فقط مرواریدهایی رو در لاکه لاک پیدا کردم و یکی از اونا رو به دریا انداختم همین اجدهای دریا گفت باشه حالا که قصد برهم زدنه آرامش منو نداشتی پس با من به دریا بیا تا در کنار هم زندگی کنیم جوون به دقت به های دریا که خوب نگاه کرد متوجه شد که این همون اژدهای داخل قاره پسری هم که در داخل غار با اون پیمان برادری بسته بود همراه اژدها بود و پسرش بود اجداهای دریا گفت از وقتی که تو پسرمو نجات دادی و برادرش شدی منم پدر تو شدم من پدر تو هستم و بعد با مهمون نوازی با غذا و نمشیدنی های مختلف از جوون پذیرایی جون مدتی در کنار اجداهای دریا و پسرش که پیمان برادری با اون بسته بود زندگی کرد تا اینکه روزی پسر اجداها به جوون گفت آه پدرم به تو پاداش خوبی میده اما اما تو پاداش قبول نکن فقط از اون یک کدوی جادویی بخوا با اون میتونی هرکی که آرزو داری ظاهر کنی همونطور که پسر اجدها گفته بود اجدهای دریا از جوون پرسید آ تو پسرم رو نجات دادی به پاداش چی میخوایی به تو بدم جوون پاسخ داد من من پول و جواهرات نمیخوام فقط فقط یک کدوی جادویی میخوام اجده دریا ابتدا با خاسته جوان جوون نکرد. اما سرانجام قبول کرد و یک کدوی جادویی به جوون داد و جوون از اونا خداحافظی کرد و از دریا به خشکی اومد. جوون به خوشی که رسید خیلی احساس گرسته کرد. با خودش گفت چقدر گرستنم؟ کاش چیزی پیدا کنم بخورم. هنوز حرفش تموم نشده بود که یه دفعه میزی پر از قضاهای خوشمزه در مقابلش ظاهر شد. جوون با ولع تموم شروع کرد به خوردن و نوشیدن. جوون بعد از اینکه دوباره دوباره برافتاد احساس خستگی کرد. ایستاد و گفت آخ خیلی خسته شدم. راه زیادی اومدم. دیگه نمیتونم اتا بدم کاش کالسکی بود سوار اون شدم. اینجوری زودترم میرسم در همین موقع کالسکی زیبا با دو اسب بلند یال در مقابلش ظاهر شد جوون با خوشحالی سوار کالسکه شد و به طرف سرزمینش به افتاد اجازه بدید براتون نقل کنم از شاهزاده خانوم و پسری که اونو به نزد پادشاه برده بود و ادعا کرده بود که اون تونسته شاهزاده خانوم رو از شنگار پرنده نه نجات بده پادشاه که از دیدن دخترش سخت خوشحال شده بود اعلام کرد که به زودی جشن ازدواج شاهزاده خانوم و پسر جوان رو برپا میکنه اما اما اما شاهزاده خانم از این وصلت راضی نبود و به پدرش میگفت پدر این مهد نجات واقعی من نیست نجات دهنده من به زودی از راه میرسه و گوشواره و نصف دستمال ابریشمی منو با خودش میاره خواهش میکنم پدر کمی صبر کنین من, من میتونم که اون میاد. پادشاه وقتی اصرار دخترش رو دید قبول کرد و گفت باش دخترم من چند روز دیگه صبر میکنم فقط چند روز دیگه و اگه اون جوونی که تو اظهار میکنی نجات دهنده واقعی تو نیاد من مراسم عروسی تو و این پسر جوون رو برپا میکنم شاهزاده خانم گفت متشکرم بدر متشکرم من میدونم اون میاد و حقیقت برای همه روشن میشه یقین پیدا کنین که اون نجات دنده واقعی منه نه این پسر دروخ به شما قول میدم مدتی گذشت اما خبری از نجات دنده واقعی نشد که نشد و پسر جوون که همچنان ادام کرد نجات دنده شاهزاده خانومه نزد پادشاه رفته گفت قربان بهتر هرچه زودتر مراسم ازدواج ما رو برپا کنین من دلیل این تعلل و درنگ شما رو نمیدونم. خود شما قول داده بودین که هر کس شاهزاده خانم رو پیدا کنه اونو به عقدش در میارید و حالا که من دخترتون رو پیدا کردم شما هیچ اقدامی نمیکنید و خلف وعده میکنین. مردم در انتظار عروسی ما هستن قربان پادشاه دید خبری از اون کسی که دخترش میگه نیست و طرفی بیش از این نمیتونه خلف وعده کنه اعلام کرد. باشه فردا جشن عروسی برگزار میشه قبل از برگزاری جشن عروسی شاهزاده خانم پنهونی از غصب بیرون رفت و به امید پیدا کردن نجات دهنده واقعی خودش به این طرف و اون طرف سرزد تا اینکه که دید کالسگی با دو اسب یال بلند از دور داره وارد شهر میشه دختر نیمه دستمال ابریشمی خودش رو در دست های جوونی که سوار کالسکه بود دید و با خوشحالی به طرف اون دوید و با خوشحالی گفت خوش اومدی خوش آمدی و بعد جوون رو نزد پدرش برد و پادشاه وقتی نیمه دستمال ابریشمی و لنگه‌ی گوشواری دخترش رو در دستان جوون دید یقین پیدا کرد که این جوون نجات دهنده واقعی دخترشه و دستور داد داماد قلابی رو به سزای اعمالش برسونن و جشن عروسی باشکوهی برای دخترش و جوان برپا کرد و اونا تا آخر عمر با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن اون که شنیدید افثانه پرنده نهسر بود از مردمان سرزمین چین برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم چین اثر فریدریک اچ مارتینز با ترجمه از عرفان حسین زده افسانه ها باستاب ویژگی های زندگی مردم هن. روابط انسان و روش برخورد اونها رو با دیگر تجزی و تحلیل کنن و تفسیریر احساسات امیق و ژرف انسانیان هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار آسیه همتی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده سانه دیگر بترود